فصل بیستم. به محض آنکه پولیت وارد خانه باری تپه شد جنگی به نگوزشته آسوده پدرم در دوران تجرد و تصمیم پالت بر اینکه او را به صورت شوهری درآورد و وادار به مراعات راه و رسمان کند در گرفت بلافاصله از در سریقه زریف زنانی او در همه اتاقها نمایان شد و حالات خشن و مردانی خانه را ملایم کرد روی میز اتاق نارخوری در کنار تصویر من و سیدنی روی پیانو در اتاق خواب پلت در طبقه بالا همیشه پر از گل بود. اما در اتاق خواب پدرم خبری از گل نبود. چون پدرم شنیده بود که گل اکسیژن اتاق را مصرف می کند. اما غیر از بوی خوش گل چیزهای دیگری هم بود که به خاطر ما بیاورد که زنی در خانه است. اتاق خواب وسطی را که مال پالت شده بود آغشته بود. بوی مالایم این اطر در همه خانه پیچیده بود و با بوی مردانه ادوکولان میتسوکو که پدرم مصرف میکرد در همیامیخت. نوع مستخدمین هم که تاکنون همه مرد بودن عوض شد و پالت مستخدمه خود را همراه آورد. این مستخدمه دختری اسکاندینافی بود که من او را فقط به نام جنی به یاد میآورم بعد سر و کله پودل پیدا شد. این اولین سگی بود که در خانه باری تپ راه یافته بود. برای به هیچ وجه آخرین سگ نبود. در دوره پالت معمولاً سگها جفت جفت به خانه آورده میشدند. هر وقت پالت به فکر دادن هدیه‌ای به ما میافتاد، به نظرش میرسید سگی به هر یک از ما هدیه کند. پدرم همه موجودات کوچولو را دوست دارد. اما من گمان می کنم او آنها را بیشتر به طور انتزاعی و در عالم خیال دوست دارد تا به طور مشخص و در عالم واقع و با وجود آنکه درباره یک ماده سگ و پنج طولش که در سفرهای کمپانی شرلوک هولمز در سنین جوانی همراه او بودند داستان جذابی نوشته است هرگز ندیدم که با وجود سگ در دوروبرش آرام و راحت بماند او باید از زمانی که شش تا سگ را در آپارتمان کوچک اجاره‌ای خود نگاه می داشت تا دا حالا خیلی تغییر کرده باشد زیرا از آن به بعد من هرگز ندیدم که او از وجود سگ در خانه راضی و خوشحال باشد او مطمئن است که پوست و پشم سک ها حامل میکروب است زبان زدن سک ها برایش ناراحت کننده است و از اینکه زبان آنها دست او را بلیسد سخت نفرت دارد البته گاهی ها را نوازش می کند، اما در همین موقع هم اخمش توی هم است و بعد از آن به لفاظله دست‌هاش را می‌شوید اما احساس پدرم نسبت به گربه ها به کلی جور دیگری است یک بار در دوره کودکی هم به من گفت گربه مستقل و مغرور است این صفات را در سگ نمی‌توان پیدا کرد اگر گربه تشنه باشد شیری را که آدم به او میدهد می‌خورد اما هرگز به فکرش نمیرسد که از این بابت به آدم بدهکار است. هرگز آزادی خود را نمی‌فروشد و شکل و اندامش هم لطیف و زیبا است. وقتی گفتگوی پدرم درباره محاسن گربه شروع میشد و زبان او راه میافتاد ناگهان بلند میشد و مثل گربه جلوی من راه می‌رفت و تقلید می‌کرد. دست‌هایش را پنجه می کرد و یکی را به ترتیب جلوی دیگری می‌گذاشت. و این کار را با لطافت و آسانی انجام می داد گاه گاهی یک دستش را به پشت می برد و آن را علم می کرد و به شکل دم گربه در می آورد. سرش را جلو می آورد و از میان چشمان نیمه بسته نگاه می کرد و در این حال لبخندی زیرکانه و ماهرانه بر می آورد و درست مثل گربه می شد. پودل سگ کوچک سیاهی از نژاد اسپانیالی بود وقتی پولت آن را به خانه آورد هنوز کوچک بود و خانگی نشده بود اما پولت میخواست همیشه این طول سک را با خود نگاه دارد. عصرها در سالن همراهش باشد و از این رو دیری نگذشت که خانگی شد و شروع به ایجاد مزاحمت نمود. در این لحظات پدرم که خودش در تئاتر لندن به صورت سگ درآمده بود و پرشورترین تحسین تماشاچیان را برانگیخته بود، هیچ چیز خوشمزه در حرکات این توله سگ نمیدید و با هراس و نفرت زیاد می گفت: ببین این ماده سگ لعنتی چه کرده. زود از اینجا بیرونش کنید. پولت با نرمی اطاعت می کرد، اما فردا شب باز همان آش بود و همان کاسه. پدرم کم کم متوجه شد که بر خلاف دوران تجردش که هر حرف او قانون بود حالا اداره خانه و حل و فصل مسائل آن چندان آسان نیست. مستخدمین هم کم کم به این تفاوت بین گذشته و حال پی می بردند. بیگر جورج نمی‌توانست تنها و به میل خود غذاهای خوشمزده ولی یک نباخت انگلیسی را بپزد. حالا دیگر پولت دستور غذاها و مخلفات جدیدی میداد که فرانک برای تهیه مواد آن شتاب زده به مغازه میرفت و جورج هم این غذاهای خارجی جدید را استادانه عمل می‌آورد. هر روز چیز تازه سرمیز بود که غذا را خوشمزه و متنوع می‌کرد. اما برای خوشمزه کردن زندگی به طور کلی خود پولت کافی بود. خانه از حالت آرام سابق درآمده و به صورت اجتماعی شادتر شکوفان شد گرچه از بیشتر خانه هالیوود هالی ساکتتر و موقرتر مینمود. پلت رفت و آمد را دوست داشت پدرم که قبلاً چندان رفت و آمدی نداشت زیرا نمی وقت خود را صرف رسیدگی به جزئیات مسائل خانه کند به زودی دریافت که می‌تواند این کار خسته کننده را به گردن پولت بگذارد و از سمیم قلب این وضع جدید را پذیرفت همه ی افراد هالیوود پدرم را میزبانی خوشبرخورد و عجیب می دانستند. به نظرش بازی کردن نقش میزبان برای او مثل یک درام بود. طرز رفتار او مانند خانواده سلطنتی انگلستان و طبقات بالا رسمی ولی با لطف بود. ولی برای آنکه مهمانان از پیر و جوان احساس راحتی کنند، گاهی از رسم پذیرای خود عدول می کرد. اما پدرم یک میزبان عادی نبود و نمیتوانست باشد. زیرا کار او بیش از هر چیز و پیش از هر چیز سرگرم کردن دیگران بود. از این جهت کمتر میتوانست فرصتی را برای شوخی یا خوشمزگی و دست انداختن چه در خانه خود و چه در خانه دوستانش از دست بدهد. وقتی او و پاله تازه از چین برگشته بودن دوگلاس فربنگز و زن تازش، لیدی سیلوی آشلی به افتخار آمدن آنها زیافتی دادند. همین که پدرم به خانی آنها رسید نوکر چینی دوگلاس در را به روی اوگو شد. پدرم یواشکی به این نوکر گفت من با تو چینی حرف میزنم حتی اگر حرف مرا نفهمیدی جوابم را بده. نوکر قبول کرد. در تمام آن شب او به لاتا الات پدرم به زبان چینی درست حسابی جواب میداد. همه چیز چنان اصیل مینمود که مهمانان با لحنی احترام‌آمیز این بر آنور می‌گفتند که پدرم واقعا نابغه است. زیرا دو سه هفته در چین بوده ولی زبان چینی را مانند یک بومی چینی حرف می‌زند. پدرم در مهمانی‌های خودش در کار شوخی جسورتر می‌شد. یک شب در یک مهمانی مجلل پدرم متوجه شد که یک بانوی انگلیسی ثروتمند پهلویش نشسته است. و با جدیت تمام پیوسته از مسائل خاص روشن فکران برایش حرف میزند. یک نواختی شکنجه است که پدرم کمتر میتواند می آن را تحمل کند وقتی پیش خدمت با ظرف سالات نسدیکان آمد پدرم و به خانم گفت منذرت است یک دقیقه بعد با وقار تمام دستش را توی ظرف سالات فرود کرد یک چنگ از آن برداشت و در بشخابش گذاشت دستش را به دقت با دستمان صفرش پا کرد و بعد با همان لحنه گفتگوی قبلی افزود؟ بله خانم چه میفرمودید؟ اما خانوم دیگر چیزی نمیفرمود سخت خندهاش گرفته بود و به این ترتیب رسمی بودن و رسمی حرف زدن در این مهمانی به پایان رسید. شخصیت پاللت و پدرم از بسیاری لحاظ مکمل یکدیگر بودند. پدرم خواستار زندگی آرام بود و دلش میخواست شب‌ها شبها را به خواندن و نوشتن چیزی بگزراند پولت هم کتاب خاندن را دوست داشت و بعضی از شبها را هم به دخت و دوست میگذراند. اما او نمی هر شب را آرام و بی صدا و وقتی از آن خسته میشد با پدرم صحبت می کرد که او را برای گردش بیرون ببرد پولت دارای روحیهی دائما شاد بود و کمتر شادی او در اثر های گاهگاهی پدرم مختل می‌شد. صبر می‌کرد تا پدرم از آن حالت بدراید و در این مدت وقت خود را با درس‌های رقص و آواز یا با منصید نیمی نمی‌گذراند. حتی در لباس پوشیدن سلیقه آن دو کاملا متفاوت بود. پدرم محافظهکار و پولت طرفدار زرق و برق در لباس و افراد در آن بود. و جواهرات گرانبها ها دوست داشت. گردن بندها، دست بندها و چندین انگشتر با نگینهای قیمتی در اختیار داشت. پدرم نمی توانست چیزی که او را سنگین بپوشد یا همراه داشته باشد. حتی اغلب پول زیاد همراه خود نداشت. معمولاً 25 دلار در کیف خود داشت و اغلب اوقات چک صادر می کرد. تا که من به یاد دارم هرگز انگشتری به دست نمی کرد و ساعت مچی نمی بست. همیشه به من می گفت که از داشتن چیزی به دست خود ناراحت است. تا موقعی که جلیغ مد بود ساعتش را در جیب جلیغش می گذاشت. جالباسی پولیت مجموعی از رنگ ها بود. لباس شبهای او آخرین مد و گران قیمت بودند. اما پدرم تا آنجا که من به یاد دارم سه دست لباس شب داشت و آنها را برای مدتی مدید میپوشید. علاوه بر این دو لباس از مد قدیمی داشت که هرگز نمی پوشید و یک دست لباس سواری با دو تا چکمه چرمی قهوه‌ای. لباس سواریش به نظرم مال آن موقعی بود که دکلاس فربنگز با او به سواری میرفت. پدرم هیچ وقت به اسب علاقه من نبود. و عقیده داشت که عصبها او را بر پدرم برخلاف شخصیتهای دیگر هالیوود بود لباسهای گوناگون و فراوان نداشت لباسهای او از لحاظ رنگ و قدیمی و معمولاً از فاستانی خاکستری قهوه‌ای یا سرمهی بودند هر لباسی را سه چهار سال می پوشید. بعد آن را رد میکرد و لباس نوعی سفارش می‌داد. اما من نمی‌دانم. چرا لباس های نوی او هم مانند لباس های به نظر می‌آمدند؟ اگر چه پدرم در لباس پوشیدن محافظ کار بود همیشه از مد طبعیت می‌کرد. مگر در یک چیز همیشه در موارد معینی چه از و چه شب پوتین می پوشید با این او از چرم ورنی مشکی و بالای آن از جیر خاکستری بود به طوری که همه خیال میکردند گتر یا روپایی بسته است. اتیاد پدرم به این کفش ها علت احساسی داشت. یک بار به من گفت وقتی من بچه بودم و نخش های کوچکی در تاتر داشتم همیشه می دیدم که هنر بزرگ و اشخاص مهم مثل سر هنری ایرانیک از این کفش ها می پوشیدند. در تمام عمرم آرزو داشتم وقتی دستم رسید از این کفش ها بپوشم بدبختانه وقتی دست پدرم رسید یعنی در سالهای جنگ جهانی اول این پوتین‌ها از موت افتاده بودند ولی این برای پدرم مهم نبود او همان کفش هایی را می که آرزویش را داشت سالها حتی تا جنگ جهانی دوم همین نکفش ها را بپامی کرد و همه نسل جدید را که از وجود این کفش ها بیخبر بودند به حیرت میانداخت. همیشه سه جفت از این کفش ها داشت زیرا دوختن آنها را به انگلستان سفارش می‌داد همین که یکی از کفش ها کهنه می‌شد فرانک را وا می داشت که آن را به انگلستان بفرستد و سفارش بدهد که یکی دیگر از رویش بدوزد این کار اگرچه گران تمام می‌شد ولی پدرم از این اسراف چشم نمی پوشید. پدرم با آن موهای خاکستری با لباس فاستانی سرمهی و آن کفش ها به نظرش همیشه جالب و حتی ممتاز بود اما پولت تا به دیدن این کفش ها را هم نداشت به نظر او این کفش ها متعلق به عهد باستان بودند و از این جهت تصمیم گرفت پدرم را از پوشیدن آنها منصرف سازد اول شروع به گوشه و کنایه زدن کرد که این کفش ها از مد افتاده است. ولی این به خرج پدرم نرفت. بعد پولت رو راست و سریح درباره باری کفش ها نظر داد. او از پدرم خواهش میکرد جونی لطفا برای خاطر من امشب این کفش ها را نپوش. پولت راه و رسم مخصوصی داشت. او می پدرم را به خیلی از کارها وادار کند. اما در مورد کفش ها موفقیتی به دست نیاورد. یک روز تصمیم جسورانه تری گرفت. هر جفت کفش را پنهان کرد. آن شب پدرم رفت کفش ها را بپوشد ولی آنها را نیافت. ما صدای او را که در اتاقش با خود حرف می زد و اشیا را زیر و رو می کرد و به هم می میشنیدیم. بعد زنگ زد و فرانک از پلکان بالا دوید. پدرم در سرسرا به فرانک برخورد. با ناباوری پرسید: فرانک های من کجاست؟ فرانک با تعجب پرسید: مگر سر جایش نیست؟ و خودش به جست جوی آنها پرداخت. پدرم به دنبال او رفت و دوباره دست خالی بیرون آمد. با نگاه خیری من و سیدنی را دید و پرسید: چارلز، سیدنی، کفش های مرا ندیده اید؟ البته که ندیده اید. این را با بی صبری گفت و منتظر جواب ما نشد. مرد شورش ببرد. پس کجاست؟ پولت را صدا کرد. اما پولت که خود را برای بیرون رفتن حاضر می کرد، جواب مبهمی به او داد. پدرم باز گفت. مرد شورش ببرد. بالاخره باید یه جایی باشد که؟ و به سرعت از پلکان پایین رفت. من و سیدنی که مانند او سرگشته بودیم دنبال او افتادیم. فرانک هم از اتاق بیرون آمد و به ما ملحق شد. دائم سرش را تکان میداد. پدرم از جلو و ما سه نفر از عقب پایین رفتیم. مثل گرد با تمام طبقه پایین را گشت. همه چیز را زیر و رو کرد. کشوها، گنجها و چمدانها را به هم ریخت. مابرها را از جاتکان داد و پشت پیانو ارگ را نگاه کرد. پیوسته ناامیدتر میشد. هر جا را که ممکن بود یا ممکن نبود کفش ها در آن باشد گشت. پیوسته زیر لب می گفت. مرد شورش ببرد. بر پدرش لعنت. پس کجا رفتند؟ فرانک آخر کفش ها کجا هستند؟ اگر چیزی هم به نظر فرانک می رسید صدایش در نمی آمد. او با خون سردی شرقی به پدرم در جستجوی کفش ها کمک میکرد. پولت حالا دیگر لباس پوشیده حاضر شده بود. چنان خود را راسته بود که مثل تابلوهای نقاشی رینوردز به نظر رسید. خرامان از اتاق بیرون آمد و گفت چارلی، او، چارلی هنوز حاضر نشده ای؟ دیرمان میشود؟ پدرم که بالاخره به حالت قلیان خشم رسیده بود فریاد زد کفش هایم نیست یک لعنتی پدر سوخته ورد و زنایی کفش هایم را دستیده است بی کفش که نمیتوانم بیرون بروم پولت با خونسردی گفت فردا پیدا می شود. حالا کفش های دیگر را بپوش، بیا برویم بیا چارل دیر می شود پدرم جواب داد آخر بیکفش که نمیتوانم بیایم و به جستجوی بیهود ادامه داد و همه چیز را زیر و رو کرد. بالاخره پولت دید که این توطعه به جایی نمی رسد، رفت و هر سه جفت کفش ها را در جای مناسبی گذاشت. پدرم یک جفت از کفش ها را پوشید و بدون اینکه که حرف بزند با او بیرون رفت. پدرم در این دعوای کوچک پیروز شده بود. اما برقی در چشم پولت می درخشید که نشان میداد عقب نشینی نخواهد کرد. نه در موضوع کفش ها و نه در هیچ چیز دیگر. او آهسته و با ملایمت میکوشید پدرم را از عادت فوق پرستی و محافظه کاریش بکشد. موضوع کفش ها فقط نشانهای از این عادات بود هر وقت به سالان نگاه می کرد در چشمانش، همان برخ دیده می شد. یک روز گفت، آه چارلی، باید خودمان را از شر مقدار زیادی از خرط اینجا خلاص کنیم. خیلی آشغال اینجا جمع شده است. پدرم داشت کتاب می خاند. اما سرش را به سرعت بلند کرد و گفت، چرا چشه؟ من که چیزی نامناسب نمی بینم. و نگاه پارمهری به دور اتاق و یادگارهای آن اکس ها و اشیایی که از بس در جای خود مانده بودند گویی ریشه گرفته بودند انداخت. پولت دوباره با نوازش وانمودگری گفت اتاق خیلی است. اما اگر پرده ها و فرش هایش عوض شود و مبل های آخرین مد در آن بگذاریم خیلی غشنگ تر می شود. من می توانم همین الان آن را پیش خودم مجسم کنم. پدرم به کوتاهی گفت فلش کن همه چیز اتا خوب است. پولت مثل اینکه آخرین حرف پدرم را نشنیده باشد با بالند پروازی گفت آره چارلی، اما ما باید همه خانه را مرتب کنیم. کاغذ های دیوار را عوض کنیم، نقاشی کنیم، فرشها را تغییر بدهیم. می از آن نمایشگاهی بسازیم. پدرم که دیگر از جا در رفته بود گفت نمایشگاه ماهد شورش ببرد. پول تو با خرج تراشی هایت مرا ورشکست کنی؟ اما در حقیقت خرج کردن پول نبود که پدرم را آنقدر ناراحت میکرد درست است که او خانه را ساخته و آراسته بود، اما به داخل خانه چنان عادت کرده بود که آن را جزئی از خود میدانست. او از جابجا کردن یکی از اشیا هم ناراحت میشد چه بلاست که آن را به کالی بردارند و عوض کنند. او هرگز نمیتوانست در آنچه به آن عادت کرده بود تغییر اساسی بدهد پولت در آن روز دیگر دنباله یه موضوع را نگرفت اما معلوم بود که آن را وله میکند چنان به اطراف اتاق نگاه میکرد که گویی برای خودش دارد فکر میکند پدرم که داشت دوباره در کتابش قرق میشد این حالت او را دید او پیروز شده و پالت را سر جای خود نشانده بود او برای همیشه حیولای تغییر و تبدیل را رانده بود اما با ناراحتی در صندلی خود وول میخورد